جهان بر ابروی اید از حلال وسمه کشید هلال اید در ابروی یار باید دید شکسته گشت چو پشت حلال قامت من کمانه ابروی یارم چو وسمه باز کشید مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت که گل به بوی تو برتن چو صبح جام درید نبود چنگ و رباب و نبید و او که بود گل وجود من آغشت یک گلاب و نبید بیا که با تو بگویم غم ملالت دل چرا که بی و ندارم مجال گفت و شنید به وصل تو گرجان بود خریدارم که جنس خوب مبسر به هر چه دید خری؟ چون ماه روی تو در شام زلف می شبم به روی تو روشن چون روز می گردید به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام به سر رسید امید و طلب به سر نرسید ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند بخوان ز نظمش و در گوش کن چون مرواری